بسم الله الرحمن الرحیم موسسه آموزش عالی حوزه وی امام رضا علیه السلام معاونت پژوهش کرسی علمی ترویجی بررسی فقهی و حقوقی جمعآوری احطلاحات در ورود قرآن ارائه کننده حجت الاسلام و المسلمین علی کارشناس ناقد حجت الاسلام و المسلمین مصطفی اسکندری دبیر علمی حجت الاسلام مهدی عزیزی سهشنبه 5 آذر ماه 1402 به صورت ابتدار شروع می با ارائه آقای حجت الاسلام والمسلمین جناب آج آقای کارشناس حدود 20 دقیقه الی نیم ساعت بحث خودشون رو ارائه کنند و بعد در خدمت جناب استاد اسکندری هستیم برای ایک نکات و ملاحظات خودشون رو بفرمایند. در پایان هم فرصتی رو دوباره به ارائه کننده محترم میدیم تا به دفاع از نقدها پرداخته و بحث خودشون رو جنببندی کردن خب در خدمت جناب آقای کارشناس هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد الله بس. الله الله و محمد الرحمن الحمدلله الله محمد الله محمد با تشکر از استاد محترم دو جناب حجت الاسلام و المسلمی <بر Certified to them> معاونم محترم پجروه شناب حجدویسام عزیزی اونشالله بحثی که میدی مفید واقع بشه و مرزی رضای پختالا و آقای مامزمان علیه السلام واقع بشه بحث ما انوانش هست باکابی فقهی حقوقی جمع وری اطلاعات در ورود پنهان بحث گرود پنهان برای استازمان ها و نهادها، نهادهایی نهاد هایی که به جستجوگری و در واقع مسائل اطلاعاتی میپردازند یه اهمیت ویژه‌ای براش داره حکومت اسلامی هم برای سیانت از خودش نیازمند به سیانت از خودش نیازمند به, نیازمند به مسئله درود پنهان هستش مقابله با اقنام های پنهان شناسای اهداف دشمن و ونسازسازی فعالیت های گروه های معاند در گروه از جمله کارکرد های در واقع ورود پنهان هستش ولی عمل آزاد و بدون حد و مرز در امر ورود پنهان خودش یک امر خطر افریدن هستش چون دین مبین اسلام بر رعایت حریم خصوصی افراد تاکید داره و ممنوعیت ورود بدون استیزان رو برش آیات قرآن کریم و برخی روایات تأکید دارم. در نظام... واقع این بس به نوعی محبوب شده به بس فقه امنیت بله بله بله در, زی... زی... در زیل فقه امنیت زیل... هست خدا این هم زیل فقه حکومت فقه بله ما میتونیم در, در, در واقع اگر ما فقه رو تقسیم کنیم به فقه فرد و فقه کلان فقه خود فقه... و فقه کلان فقه نظام یا فقه کلان درش هم بحث ورود پنهان میتونه مطرح باشه اگر از جنبه فقه فردی وارد بشین در واقع ورود پنهان مشمول همون آیه شریفه بلا تجسسون میشه اون حرمت نهی کلی از تجسس شاملش میشه عموم اون آیه شاملش میشه اما وقتی که پای مصالح نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی و در واقع حتی اگر ما امنیت رو جز مقاصد شریعت بدونیم در واقع برخلاف اهل سنت ممکن اونها امنیت رو ندونن اونها مقاصد خمسه قائلند؟ ولی ما اگر مقاصد رو برش بیفضاییم امنیت رو هم جز مقاصد بدونیم حفظ امنیت نظام اسلامی در گروه ورود پنهان هستش چون بدون اون بمیتونن نیروهای اطلاعاتی از در واقع فعالیت های دشمن آگاه بشن به زمان میخواییم کنید بحث بررسی بکنیم که این حدود و سقوره در واقع فعالیت ورود پنهان و چطور باشه از نحاظ شرمی هنگارم که عامل جمع اطلاعاتی سازمان دولتی باشه مثل وزارت اطلاعات مثلا معمولاً به ایسترویس مخفی، میگن جمع وردی در ورود پنهان توسط افسر حادی صورت میگیره که سیاست سیاستگزاری و هدایت کنندگی عملیات ورود پنهان هستش. افسر خادی موظفی که منابع و عوامل و دستندرکاران جمع آوری رو به سمت ترمین نیازهای سازمان اطلاعاتی هدایت بکنه. و در واقع نقشهای مثل هدایت ترمین نیازهای خبری، و اطلاعاتی ارتباطات آموزش و کمک به پیشبینه اطلاعات و برآوردها و تهدیدها رو عهده داره در ابتدا لازمه خود ورود پنهان ماهیتش برای ما مشخص بشه در تعریف ورود پنهان گفتن ورود غیر آشکار به یک مکان ثابت یا متحرک و مجموعه اقداماتی که انجام میشه برای ورود مخیانه به به احلاف مورد نظر بش میگن عملیات ورود پینه که شامل شیده میشه مثل اصطراق سند، میکروفنگوزاری و امثال که بهش اشاره, اشاره میکنیم در بحث موضوع شناسی کانون. بحث دوم حلیم خصوصی هستش، حریم از حرمت به معنی مره گرفته شده به این دلیل که تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع هستش. حریم عبارت از اموریه که انسان ازش دفاع میکنه و در مقام حمایت از اون بر میخیزه. مصادیق حلیم چند تا مهم داره مثل حق بر تنها ماندن دسترسی محدود به انسان و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی ناخواسته و ناخوانده به انسان. مهرمانگی و پنهان ساختن برخی امور از دیگران کنترل بر اطلاعات شخصی حمایت از شخصیت و کرامت و حق ب در واقع عالم سمیمیت و کرامت انسانها هرم خصوصی قلمروی از زندگی هر شخصی که اون شخص انتظار داره که بدون رضایت وی کسی بهش وارد نشه حریم خصوصی انسان غیر قابل تسخیر هستش و در واقع اگر کسی وارد حریم شخصی انسان ها بشه موجب زرر و خسارت و در واقع نسبت به اون حریم میشه حریم خصوصی در یک تقسیم بلی تقسیم میشه به چند مورد حریم خصوصی اطلاعاتی، حریم خصوصی ارتباطی، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی مکانی و حریم خصوصی شخصیتی. بعد از اینکه اجمالاً مفاهیم اصلی و کلیدواژه‌های اصلی یعنی هم ورود اطلاعات حریم رو گفتیم، یه اشاری بعد نیست بکنی به اصول جمعآوری اطلاعات در ورود پنهان که در بحث موضوع شناسی مطرح میشه. اولین اصل, اصل پنهان کاریه، یعنی مأمور در واقع اطلاعاتی بودن، پنهان باید خودش رو پنهان نگه داره از دید دشمن. دوم نیاز مادی هستش بر اساس اون نیازهایی که داره باید اطلاعات رو کسب بکنه. مثلا ممکنه اون امور شخصی فرد که مربوط به خودش هست اونها دیگه دخیل در مسائل اطلاعاتی نباشه. بله ضرورات رو به بله از ضرورات طبت رو به, بله. بله. بله. به بله. منابع کسب اطلاعات هم باید منابع درستی باشن و اصل استفاده از روش ها و ابزار مناسب هم اینجا اهمیت ویژه داره و حفاظت عملیات در ورود پنهان اینها اصول جمعآوری اطلاعات هستند. اما خود ورود پنهان از لحاظ موضوع شناسی چند تا روش شد. چند تا قسط داره قسم اولش روش سیکنالی هستش حالا اینا بحث های خیلی پیچیده در واقع اطلاعاتی از اصلا بحث فیخیشون میخواستم بله بله ما, از اولش... بل بل بل. بل ما ا... نام... نام میبریم بیگه اون بحث های خیلی تخصصیه یک چیزیش برود نمی کنیم دوامین روش روش الکترونیکی یا الینت هستش <تصفح> روش س... قسم ثبون از اقسام برود پرمان روش مخابراتی هستش، یا کامینت و قسم چهارمش رویش تصویری یا ایمینت هست و قسم پنجمش رویش ورود فیزیکی و از اسناد و مدارک و سازی و قسم هفتم هم روش ورود با امکانات فنی یعنی جمعاوری فنی هستش به وسط اصطراق مثل خودودت، یعنی سمت تل... تلفنی و میکروفون گذاری، استفاده از دوربین های مخصوص، اکاسی، فیلمبرداری و دیده‌بانی. خب حالا اگر بخوایم وارد بحث فقهی حقوقی در واقع ورود پنهان بشیم، گفتیم که بر اساس فقه خرد ورود پنهان مشموله نه عمومه. یه مستفاد از آیه شریفه بلا تجسس این فقره آیه شریفه که می فناد بلا تجسس که این تجسس اعمه از تجسس در موقع فیزیکی و غیر فیزیکی می مثلا درباره شمول اگر بخواییم از لحاظ فخری و از لحاظ حقوقی بحث کنیم در ماده 104 قانون آینه دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب مسبب 1378 شمسی اومده در مواردی که ملاحظه، تفتیش، بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشه قاضی به مراجع زیرت اطلاع میده که اشیاء فوق رو توقیف کنند و نزدش بپرستن بعد از وصول اون رو در حضور متهم ارائه و مراتب رو در صورت, در صورت مجلس قید میکنه و بعد از امضای متهم اونها رو در پرونده ضبط میکنه استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید میشه و چنانچه اشیایی مزبور حائز اهمیت نباشه و ضبطش ضرورت نداشته باشه با عقص رسید به صاحبش مسترد میشه این ماده مربوط به مواردی که مکالمات صوتی یا تصویری قبلا ضبط شده باشه و لازم باشه مورد استفاده واقع بشه تفسر زیل ماده 104 میگه کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوطه یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی، ضروری تشخیص داده میشه ممنوعه همه این برمیگرده و همه عموم دهی مستفاد از آیه شریف بلادتی است در این تبصیل کنترل و شمود تلفن افراد با احراز شرایط زیر جایزه یکی اینکه موضوع صرفاً مربوط و اهمیت کشور باشه و دوم اینکه اجازه شنود تلفن منحسرت توسط قاضی صادر شده باشه و سوم امر شنود باید ضرورت داشته باشه همونطور که استاد محترم در موقع اشاره کردن که از ضرورت تقدر به قدرها بنابرای قاضی باید درباره یکی از این امور ابتدا ضرورت هم رو احراز بکنه یعنی شنود باید در کشف و حقیقت محسر باشه و از طرق و توسر به وسایل رو عدده دیگه حقیقت رو کشف بکنه. مسئله و نسل دوربین هستش که نسل دوربین هم گفتیم جز موارد هستش این هم همون احکام برش باید میشه از لحاظ حقوقی و فقری. کنترل ایمیل و مرسوله های پستی هم همین طور اما بررسی فقهی حقوقی نقض حریم خصوصی در ورد پنهان گفتیم حریم خصوصی چند قسمه قسم اول حریم خصوصی اطلاعاتی بود اولا تعریف کنیم که چیه حریم خصوصی اطلاعاتی هر نوع داده مثل صد، تصویفی، نوشته، نشانه، نقشه یا ترکیبی از اونها که در اسناد مندرد شده باشه یا به صورت نرمکساری ذخیره شده باشه یا به هر وسیری زرم شده باشه بشینگر اطلاع که مربوط به قویت احوال شخصی وضعیت فردی عبائد و باورها و پست الکترونیکی اکس مو و هستش طبق ماده یکه آین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات اینها جز حریم خصوصی اطلاعاتی به شما میان و اطلاعات این شخص رو کسی تونه بدون مجوز قانونی در واقع بهش تجاوز میکنه و حریم خصوصی اطلاعاتیش رو نمز میکنه بله قانون تجارت الکترونیک ایران هم صلیحاً حریم خصوصی رو تعریف نکرده ولی یه قواعدی رو بیان کرده مثل حمایت از داده های حساس در ماده 58 یا در ماده 59 اومده شرایط ذخیره پردازش و توزیع دادهها باید با رضایت شخص باشه یا در ماده 60 گفته های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی شخص باید محفوظ بمونه و همسالمون به این موارد اشاره کرده اما از نظر فقیقی بخوام اشاره کنیم ما حقق در کتابشون فرموندن در واقع افشای سر مومن رو موجه به عدالت شخص کنستن جما به محقق اردبیری و در واقع این نقض حریم اطلاعاتی شخص میشه مستاق بارز افشای سر مومن و از این جهت حرام هستش البته در مواردی که اطلاعات و اسرار نه در ارتباط با اشخاص بلکه مرتبط با نظام و حاکمیت اسلامی باشه رعایت حریم اطلاعاتی به مراتب مهم‌تر چون مفسده افشای اسرار نظام متوجه جمعی مؤمنین میشه و همه رو به خطر می‌اندازه صاحب جواهر در مقایسه فرار از جنگ از گناهان کبیرش آورده میشه با افشای اسرار مسلمین گفتن گناه و مفصده دوهمی بسیار بالاتره در جلد 3 جواهر صفحهی 320 و امام خمینی رضوان الله تعالی علی هم در فرمان هشت ماده ایشون سال 61 ای فرمودن هیچ کس حق نداره به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز بران گوش بده و هم مجرم هستن و مستحق تعذیر شرعی و بعضی موجب حد شرعی از آقایشون اولی شدید بله بله حکم بله اولی شد ولی به انوان ثانوی گفته وقتی پای حفظ نظام اسلامی پیش میاد دیگه اونها از لحاظ فقه کلان اینها مشکلی نداره شما فیلم فقه فردشی بعد با اشار میکنی به فرماز. دومید دو مورد حریم خصوصی ارتباطی هستش هر شخصی ارتباطات فردی و اجتماعی داره که باید این حریمش رعایت بشه و محفوظ بمونه و بنابر اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی به رعایت حریم ارتباطی افراد در مکالمات تلفنی الکترونیکی نامه ها تصریح شده و گفته شده که استراق و تجسس اینها ممنوع مگر به حکمه قانون هم اون اقوان سانبی میشه بحث بعدی حریم خصوصی جسمانی هستش که در واقع هر گونه ترنز و تجاوز به حریم خصوصی جسمانی انسان هم حرام هست و در واقع آیات و قرآن هم به این مسئله اشاره دارن متاسفانه امروز بعضی از مدیان دفاع از حقوق بشر با تمسک به حق حریم خصوصی دنبال شکنی ها هستند و روابط نامشروع رو اینها آزاد جربه میدن و با ترواقع حق, حق بدن و حق جسم اینها رو مشروع نحاظ باطل خودشون جربه میدن مورد بعد حریم خصوصی مکانی هستش. یعنی منازر و اماکن که طبق آیه شریفه 27 و 28 سوره بود میتماد اهل ایمان هرگز به خانه غیر از خانه خودتان وارد نشید مگر که با اهل اون خانه اونس بهیریدنید چون رخصتی یافتید داخل شوید به اهل اون خانه سلام کنید و این برای شما بهتره که متذکر بشید و اگر در خانه کسی را نیافتید وارد خانه نشوید تا به شما اجازه داده بشه و اگر گفتن برگردید برگردید که این برای پاکی شما بهتر هست و در ثابت هم میگه علت نزول آیل این بوده که زنی از انصار نزد رسول خدا میاد و میگه که اوقات رو خالاتی بر من میگذره که نمی... نمیخوام پدرم یا فرزندم من رو در اون اوقات ببینه در صورتی که اینها هر وقت فرزده به خانه من میان که سپس این آیات نازل میشه و علاقه تبا تباییم به این مطاله بشتاده صاحب جواهر در جله بیست و شیش جواهر کلام آیه پنجاه سور نور به مؤمنین دستور میده غلام و کنیزهای شما و کسانی که به سن بلوغ نرسیدند باید سه بار در شبانه روز از شما استیزان کنند لذا به مجرد اینکه طفل از تفولیت خارج بشه و بارق بشه باید در همه اوقات مثل بزرگساران استیزان بکنه. همچنین شیخور عاملی در وسایب شیعه روایاتی رو مدرح می‌کنند در بایده اینکه قاعده معروف لازره که در واقع عبانت از لازره و لازره را اسلام یا لازره را و لازرر. مومن هم دلالت بر حرمت نقض حیم خو... خصوصی افراد داره. و آخرین موردی که اشاره میکنم نزع حریم ش... خصوصی شخصیتی هستش شخصیت انسان هم از مصادیق مهم حریم خصوصی و در واقع در مواردی شخصیت افراد مستقیما مورد تهدید قرار میگیره با نزع حریم خصوصی شخصیتشون آن کریم همسران رو پوششی برای همدیگه معرفی کرده و انتظار داره معایب اخلاقی و اسرار شخصیتی یکدیگر رو حفظ کنند و آشکار نکنند همچنین روایت متعددی داریم در لزوم حفظ ارز و آبرو که پیامبر اکرام صلی الله علیه و عالمی فرماید المومن حرامان كله و حرامان کلو بغیر و درو بمارو و دمو بنابراین روایت آبرو و مال و خون مومن مورد احترام همچنین امیر المومنی علی السلام میفرمایند، ان افضل الفعال صيانه الارض بهمار بالتالي کاریه که انسان با از مالش خرج بکنه و بتونه آبروی خودش رو حفظ بکنه و امام خمینی هم اشاره دارن به این که در واقع در مواردی تجاوز به حریم شخصیتی انسان از طریق و ریزی و نسبت دادن اعمال منافی عفافت و جریه دار کردن شرافت و حیثیت فردی و خانوادگی انجام میگیره که اینها مستلزم در واقع تذیر شرعی هست مطابق نظر حاکم شر یا بعضی مقام موجب حد میشه در صورتی که مثلا مثلا مثلاق و امثال اینها باشه حد قصد و امثال ها ثابت میشه صلی الله علی سیدنا محمد رعای طاهرین آمده آمده آمده آمده تشکر از با این درائه خوب که که رعایت لخت با هم لحاظ کردن درخواست از استاد محترم آمده حضرت آقای اسکندری که ملاحظات و خودشون رو بعد این دلایل بفهم و ساعتی تقریبا در خدمت نیست. علیه الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله علیه والسلام الله رسول الله علیه و الله علیه و الله علیه و و الله علیه و الله الله و چند تا نکته هست که برای تکمیل بحث ازمی کنم به حضرت را دیست. ببینید عنوان مقاله هست واکاوی فقری، حقوقی جمعاولی اطلاعات در رود پنهان. مقاله‌ای که الان من گیدم 16 صفحه هست، 12 صفحه فقط تدیین موضوعه و حدود 3 صفحه هست وارده مباحث فقیه و حقیقی و اینکه لازمه که بیشتر اون بخش دوم مباعث فقیه اون مباحث موضوع شناسی درسته که دخالت داره مثل مثلا بعضی از اون ها های رود پنهان و اینا خیلی نقشی در قضیه نداره یه نکته ای که باید مد نظر باشه نکته دومی که واسه فدمتا از تا هم خودتون هم اشاره فرمودید ورود پنهان به حریم خصوصی دو جوره یا ورود ساده ورود حریم خصوصی افراده یا فرود ورود حکومت به اینو کاملا باید هم تفکیک بشه و شما میگید موضوع بحثتون کدوم در آیا هر دوشه یا یک خدمت شانشه نقطه سومی که باید معذرش کنم شما تعریف موضوع نظر خودتون از حریم خصوصی مشخص نکرد چون بلکه نوع تعریف در رسی فدیوری بسیار اثر داره البته با توجب این که این تعریف آقای انساری رو آقای باقر انساری رو اینن دو جا تکرار کردید به نظر میشه شاید متمایل به این بودید. اگر متمایل به اون تعریف باشید تعریف چند تا اشکال داره اشکال اول چون تعریف اینه حریم خصوصی قلم از زندگی هست فرد هست کن نو نوع هم. و عرفن یا با اعلان قبلی انتظار دارد تا دیگران بدون رزرت وی به اطلاعات راجب آن با قلم رو دسترسی نداشته باشند و تا آخر، ببینید این هم انتظار انتظار بر عدم دستنسی یه حقوقی نیست چون تحبیر حقوقی نیست، الزماور نیست حال که در حریم خصوصی هیچ که فقر ورود نداره، انتظار هیچ وقت الزماور نیست یه مشکلی که در این تعریف خدمت شنان مشکل دیگری که هست ببین اگر ما تعریف رو بر اساس حریم خصوصی بر اساس انتظار بستیم حریم خصوصی خیلی نصبی میشه چون انتظار رو در از متفاوته دیگه من یه انتظار مثلا قربی ها خیلی انتظاری که ما حریم خصوصی میدونیم اونا حریم خصوصی نمیدونن لذا این مشکل به وجود میاد این هم یه مشکلی در این مشکل بعدی در این ترجمه که این د یا با اعلان قبلی اینا هیچ نقشی در توضیح معنای هریم خصوصی نداره قضایه به نظر که تضایم خود میگم این تعریف شما باید حتما صد صغور بکنید مشخص کنید خدمت شما هم میشه که قرومش باید نیاز زادی بعد ببینید در مقاله هادم میشه شما مثل... یه تعریفی بفرمایید که به نظر تون شد؟ من خودم تعریفی که از حریم خصوصی ارائه هم این حریم خصوصی آن بخش از زندگی هر انسان است که در آن از آزادی در برابر بازخواست و کیفر حقوقی برخوردار میباشد می باشند و هرگونه تصمیم گیری نسبت به آن اطلاع ورود و نظارت بر آن منحسرن در اختیار اوست و مداخلی دیگران در آن یا با آن بدون ازنه او مجاز نیست به طریقی خود در حیم خصوصی دارم اینه این یعنی در مقال خدمت شما از این بر میاد که یعنی شما ورود حکومت رو به حریم خصوصی افراد میخواییم برسران رو دید حالا که بسیاری از مقاله که شما تو مقاله ذکر کردید فرمیگرده به ورود حکومت بیگانه به حکومت داخلی مثل بیشتر ایسی های یا حکومت دیگه، دراجب با افرادم پیش میاد اینا هم باید مظ باشید و غررو به حریم حوزه حریم خصوصی افاد آدنز. این هم یک نکته است که باید بهش توجه کنید. نکته بعد اینکه ببینید شما این, این ات... چیزی که اینجا از تالید آوردید حریم خصوصی رو قلم روح شد. تقریبا به چند چیز آورده بودید محدود کرده بود و حالی که حریم خصوصی خیلی فر است چهار مورد شما تقریبا هم گفته بوده حریم خدود از ده مورد فرق مگونه مثلا شما مسکن و چیز کردی درسته ولی خود زندگی زندگی زیر مجبویه سبک زندگی میاد سبک زندگی شامله ببینید نوع ساخت و ساز حکومت رو میتونم دخالت کنم نوع پوشش نوع زینت ها قرایش زینت ها نوع خدمت شما هز میشه قضا خوردن، نقل صرف قضا، خدمتش و مسافرت اینا همه مصادیق فقط زندگی تنهام میشه لذا امید ده مورد تقریبا قلم رو حریم خصوصی میشه که باید همهشون نظر قرار داد یه موردی که شما مسئله فرمودید، مسئله اطلاعات ولی، بله، یک مورد حریم خصوصی واقعا اطلاعات هست، برست میفرموید اونتا توجه میبه، اطلاعات خود چند اسمه؟ اطلاعات هوتی اطلاعات مهارتی، اینا امروزه یا اصلا اوف اینجوری شده از حوزه علملی خصوصی مده بیرون یعنی چی یعنی شما مثلا توی سازمانی که میریید یه اطلاعاتتون می گیرند نمیتونید بگه آچهمون رو سازمنند نمیتون بدم یا ماک غام ب پذیرین باید اطلاعات اطلاع دست رو بگذاره نهو کرییس که باید بهش توجه کرد. خدم شما که در بخش مختصر فکری واکاوی فکری و حقوقی ببینید، این شما سه تا نکته رو باید, باید به نظر قرار بدهید یکی بررسی اقوال فوقه ها یکی اینکه که بررسی نصوص, نصوص دینی، آیات و روایات بعد از آیاتی که شما بهش اشاره کردید، هیچ دلالتی بر و خصوصی نداره از جمعه همی آیه 187 برای اوهل لله کن لیلتا سیام ار رفت و الانسا اکن کن نه لباس رو نکن و انتون این اصلا راجب ارتباط زناشوییه که حکم مجمفز شرعیش رو هیچ نه کسی موقع اینجا دخالت کنه، نه کسی موقع سرکشی کنه، هیچ چیزی نداره این آیل خدا سید چنین دلالتی نداره، یه نکته ایست در صفیل شنزه دو تا رمایت آبادید المومن حرام کلهو ارضو، این درسته، منطقه اشکالش اینه که این رمایت هم برسره است. حتی یک قلط هم اونجا در اونجا از رو گونه شده بود این روایت باید روایتی شما بیارید که کاملا بسار روایت قدی باشه و ده ها روایت داریم ده ها روایت داریم به بسار کتاب روایی ما توی زمینه روایت دومتون که این نه افضلش فعال سیان مال که این هم از نزیب بلاغه هست اولا مرفوعه سوامی هم اصلا دلالتی بر موضوع نداره سیانت عرض به مالی شما یعنی ارزش عرض از, از مال بیشتره بله این هست از روایت صحیحه توی زمینه داریم تو کافی اگر ام دال رو بین که شما جانتون رو از, از دست بدید یا به حساب جانتون رو مال از دست بده جانو رو اگر هم دایش رو بگید که از دست بده یا دینتو جانتا از دست بده دینتو نگرد روایت کاملا هم سنبش به سرمون ولی اصلا هیچ گونه دلالتی نداره همچنین آیه شریفه 32 از سوره اسرا ولا تقرب و زن و انهو که نفاهی شدن و سا عصبیده مثلا دلالت برقیم خصوصی نداره این فقط خدمت شما میشه یک عمل خلافشتر رو به خود بیان کنه اگر هم به فرد جوز حریم خصوصی باشه زنایی به اون فشمان میشه چرا چون بدون رضایت بوده اما زنایی به رضایت که دیگه به صحب ترکی قرار نمیگرد این هم یه نقطه ای که موقاتم مدردتون از کنم بلقی مطالبی که به بلقی از فوقه ها نسبت دادی که درستم هست اینا رو یه فرقی نیست مثلا این مسئله افشای صغر مومن اجماعی فوقه هاست همه میگن اگر کسی افشای سر مومن که از ادولت سالی این که از افشای دیگه همه اینا قبول دارن ندا اینا رو مثلا باید حالا به لحاظه فیتی توجه داشته باشید که فقط به یه نفر نسبت ندید خیلی من شما نشه خصوصی یه بخشش زیل عنوان یعنی حرمت به حریم خصوصی زیل عنوان اطلاع علاقهیز قرار میگه حالا به گلت میگن اطلاع علاقه، اطلاع درسته شد اطلاع یعنی انسان بیاد خدمش به اشراف و چیز دیگران داشته باشه خو این بالاخره در فکر ما هم اومده که اگر حالا مثلا کسی فرض برای دید زرن به نومیس مردم از بالا نگاه کنه تو خونه کسی ترى اگه بینی چش میشه در بیاره دیه نداره او یعنی فقوامقیه lesoi basis دیگه اون قرمگه ببین شما اگر موقع حریم خصوصی خوب جا افته چند تا مسئله باید مد نظر باشه این مسئله که دارم اینا لازمه اولین چی میگه از خوده خدمت شما که مبانی مسئولیت حریم خصوصی مبنای اینکه میگه حریم خصوصی مسئوله چیه چند تا داره از ویدیوهای دین اینا رو باید بیارید بندش غرونده بفهم. بله میشه مثلا فهمون از آزادی و اخیار مثلا آزادی و اخیار سلطه انسان بر شعون خیش که حالا باید ببینید مثلا سلطه مطلقه یا نه دید خورده دید خورده یا مثلا ببینید پرکورداری از فضای از سالم جهت رشد اینا ببینید اینا مبانی چیز دیگه مبانی مسئولیت علیم خصوصی. از اون طرف ط همونجور کردن دو نوع ورود به حقیم خودتی یکی ورود حاکم به خصوصی ورود حکومت یکی ورود فرده. ورود حکومت بعد مبانیشو بیارید. مبانی وروده 7-8 تا مدنم می شودش مثلا یکیش همون و رو به اختیارات و اختیارات حکومتیه. ورود فرد منظورتون که ببین اگر فرد من ببین حالا بنده نه از جانب حکومه من مخواهم وادده، من خودم دوست دارم مخواهم تجسس کنم تو زنیگه برد خب میدونم ولی, ولی مستثنیاتی داره دیگه مستثنیات قیبه است هم امرالالو که بود در خصوصی است یا نه؟ این مقانه اینا رو این چند تا نکته ای بود که برای تکمیل قیبه خلاصه بنده داشتم خدمت عرض کنم هم اصلا مشاكل مثلا میخوام نظارت باشند. بل... یه نظارت داشته باشن اولاً مثلا برای هم در کار میشه بله ازدواج میخوای یه دوام دا... مدارک دوام تحقیق کنید میرید از همه ریز زندگی جدا نوری تجسس دیگه تجرسطه ولی تجرسطه، تجرسطه حرامی نیست اجمالا این نقاطی بود که تو زین بنده بود برای خوشی تشکر می‌کنم از بستان معزن، جای اسپنگلی بسیار کسر و مفید خیلی پالمانه ملاحظات خودشون رو از اراکانده محترم جای کارشناس عاشق هست که اگر نکته ای در جنبندی بفرماید و مطلب پایانی خودش رو ارائه کنید اسم الله الرحمن <تصفيق> خیلی استفاده کردیم از نظرات استاد محترمی شد و اینها بتونه قلی کننده این در واقع مقاله باشه و این ارائه باشه و من حرف خواستی ندارم فقط اون بحث لباس و نحن که فرمودید که این دلالت نداره همون لباس به معنای پوشش هستش دید یعنی در واقع کنایه از اینه که نباید در واقع اسرار خودشون رو برای دیگران پاش بکنن از باب کنایه اراده ذکر لازم و اراده منزوم شاید بتونید از واقع دلوقت... این معنی رو دارم میدونم ولی اینجا فقط مثلا پوشش ترمست به حساب رضایت جنسی طرف این حاصل بشه موضوع آیه اینه از از این ای آیه شامل نمیشه. ممکنه جایی دیگه روایتی یک چیز را این توش باشه. ولی این آیه ببین میگه شما شبای ماه رمزون. روزه ماه رمزون مشکل داره با همسرتون. سرتون ولی شباه ماه این کار مجازه. شما لباس اون داره. یعنی باید پوشش بزین نیازهای جنسی هم دیگر این جای آیه نمیشه دلالتش اهم باشه شامل پیشش یه که خاص ولی جاهای دیگه میتونید از زبوا استفاده کنید ولی اینجا پی لازم بذارید تا که اجاز تناسلو موضوع ماده اطلاق میشه درست این تناسلو که موضوع بحث شما در ماده اطلاق و کنید بعد اینو در تمام در همه موارد گوشتش رو شامل میشه البته هم بحث بیشتر مأموریه اطلاعاتی و وزارت اطلاعات و حکومت ناظره به اون دست که این بحث من استفاده یه کتابی بنده نوشتم کم سال پیش تحت عنوال حکومت اسلامی و حریم خصوصی هم. طبعاً همه 600 تفهم میشه دبیرخانه خوبگان چپ کرده هم. خلاصه اونجا الو هم که خونه شون دارم میتونید از اونها بگیرید خدمت شما شده من مفصل مفصل همه, همه, همه, همه چیزا رو که تو حدیم خصوصی بوده این نوشته‌های حضرت علی رو میتونیم داشته باشیم استفاده بکنیم. مشکل نداره استاد خوینا من خیلی کامل نوشتم که باقضیه باشه. لطف خدما حضرت میتونم پیش خودم میشه باری. مشکل نداره آخر خیلی استفاده کنیم از گل از جناب استاد کندلی و جناب فلستووا و سری اجازه کارشناس و از کسانی که از طریق شبکه مجازی این برنامه رو با کردن هم تشکر می‌کنیم ان که این گونه جلسات فتر باوی باشه برای گسترش گفتمان فقه نظام ساز و گفتمان مباحث جدید در فقه حکومت و فقه مزاق از همه عزیزان تشکر کنیم و همه خدا خدای بزرگ ممتحارم از پاریم و الله علی سید نام محمد و آلیه تاهیم اللهم سلال الله, و الله و محمد و آل محمد و عجیب فرجم واس از, از, از, از, از این کتاب دیگه کتاب دیگه نیست این زمینه این کتاب در عربی است